از از این چه به تا آراض با تفاولش رو محلی در از این یعنی کلمه چه نحوه اشتغاقی داره؟ حالا من تو بحث بحث اما این رو چند بار از همسی روی ما کلمه ای نداریم درست الان در بحث وصول بحث تا داریم یا تا, تا آدر ترجیب یا تا آدر تراجع تراجع نما ما در روایات و خود ما کلمه تعارض آرز نذاریم الا تو همین حدیث مرخواه زراره به اصطلاح تنها این این که اصلاح جعلی مال اول اولالعادی به استثنایه این تنها روایت است که توش کلمه متعارضه نامده به استثنایه این حدیث که حدیثم نیست و باطله به استثنای این بله در واقع داریم که یه اگر اون حدیثان احد و مایه مر و آخر ینفی اینجوری یا مثلا احد و ما به خلاف آخر در خود قرآن هم همینطور لو من هند الله فی اختلافا کثیر و کلمه اختلاف آمده اما تعارض نذارینن علی حالا این کیشون به حکم روایات متعارضه این یک اصطلاح اصولی است که بعضها در مصادر اهل سنت آمد سر کلمش هم حالا چه نسبتی است بین تعارض و ارز این باز گیری بحث می‌کنیم الان جاش اینجوری نیست علای حالا یه مقدار عبارت مرحوم ناینی رو اصلاح میکنیم اشکال کلیش هم بعد عرض می‌کنم من ترجیح به الاشهریه و الاوریه بله اورع داریم در روایات عمر بن حزله داریم لکن اونجا بین حاکمینه چون دقاتا مالبنه هنزل توجه نشده اول سؤال از این است که اصحاب ما اختلاف دارن به همین سنی به دادگاه هاشون مراجعه فرمیم نه خودتون بعد اکی از ها رو بفرمیم بین که متصدی این کار بشه بعد سؤال میکنه که این فقیها ها مختلف هن اما میگه اورا و افقه اون سؤال بعدی اختلاف دوتا فقیه بعد میگه هر دوشون ذراعه هستند هر دوشون چین میگه یون ذرا دلیلشون اون روایتی که بهش استناد کردن اون وقت ترجیحات رو روایت از اونجاست شاید من اون‌ها دقت نکرموندن اورعیت ما در روایات نداریم خب ترجیح با اورعیت ما در روایات نداریم دو تا حدیث اون حدیثی رو بگیریم که رابیش اورعه ما هم ترجیحی نداره اصلا نیست ان شاء الله عرض می‌کنیم کلیش بعد عرض کنیم. بله ترجیح به اشراح... رو داریم که طبعا آی هم قبول نفرموندن مشهور قبول کردن آی خوی قبول نفرموندن و مرجح نمیزن از رو چون یکی دقیقش من هم در دو تا روایته یکی مرفوی زراره که از خیم باطله که مال اوال لعا یکم هم نهنزله اصلا کلمه اشهر هم جایی ما نداریم الا در روایت عمره نهنزله اون یکی باطله بایدن قبول بله، بله قبول دارم اما چون قبول ندارن لذا این رو قبول نمی‌کنه. اما ان شاء الله بله، نه، یه چیزی دیگه ضرورت نداره. میلر به زنه راحت‌ترین صدا معکسه. به عنوان وثاقت خود عمر النهلزره قبول. لیکن اشکال ما اشکال دیگری اصلا روایت مولانا در ترجیع نیست در خلاف ل مشهور اصلا روایت مولانا در به نظر ما شری دادیم در محل خودش اصولا ترجیع نیست که ترویع بر در غذا باشه به اصطلاح ما روایت مولانا را نظر به مقدمات و حکیت به اصل حکیت ناظر است بهساز که ترجیع بخواد بده اصلا ناظر ببین صالح و نیست حالا به هر حال این, این رو بعد اشاره میکنیم و توضیحش ارجو میکنیم به هر حال این روایت قابل به نظر ما روایت بسیار خوبی است میشه بهش قبول کرد اما مشکل این روایت مال مقام ترجیح نیست حالا تعبیر ما اینه که مقدمات کوچیکه جیه شاء الله انجام میکنم مضمون آزیا و ادعی در اینجا تعبیر کردن در لزوزه قرار واقع تمیی زور حجت عن الله و جب تمیی زور حجت عن الله و باب دیگه غیر از ترجیحه اصلا باب تا آرز نیست این انشالا بعد این توضیح هستم سالان هم هستم یه بینید باب تا آرز قوامش اینه که دو خرطی نفسه حجت باشه لول المعارضه <تصفيق> تمیی زور حجت عن اینه معنیش که ما میدونیم دو تا خرطه میگه حجت هستی کهش نیست این از هم بابت آرز نیست تمیزون خود جنده هاچه بابت آرز نیست بابت آرز قبان شویه و که ما حجیت تعبودی قبول بکنیم مثلا بگیم تعبود داریم بگیم که خبر سقر قبول بکنیم این هم خبر سقر اصلا آخر دسته این میشه تعبود اما اگر ما گفتیم با وصوب و اتمینام مثلا قیدا بکنم خب وصوب و اتمینام جزا خبر مونت که ما برای اینکه وسوب اطینال پیدا می کنیم یکی از اون دورهبار او مییم این مورد ثوب ما هست این مورد اوپ ما نیستیم پس خجت یکیه ی اصلا بابت ف رادیدیم و لظاب به نظر ما اینشاال توضیات که ساافن است که برای اصلا ما اخبار علاجژیه نداریم و اصل مطلب اینه که ما اخبار علژیه نداریم البته این مطلب هاییه حدی ش رو در مرجی ها که با کتاب و کفایه ایشون هم آمده ایشون ایشون در کفایه فقط در کتاب و سنت ما موافرات و آمه میگه در کفایه میگه اون رواستی که میگه موافر کتاب و عقص بکنیم مخالبه تحت بکنیم این معنیشه ای که این حجت اون حجت میگه برسی نیست که هر دو حجت ها ترجیح ببرده تا قدر بکنیم این حجت هست اون حجت نیست ما معتقل و هشون مثل با توانه هنزله قبول میکنه برای که اما میگه چون اونم بارات مقعودی در تحصیب مرد جهاد اختلاح دارن ترجیب رو به اصطلاح رو سهر میگنه به اصطلاح خودشون بهتره که انسان ترجیح بده ولی واجب نیست قالب تخییره در جفایه ما از کردیم که کل در رقایات با این طور اختصاص اون نرده که ایشون گفتن حالا نمیخواستم الان میگم بگه در زمان ما و معفقده ها فتخیر این نیست این طور. حالا اون بحث دیگه این تخیر نیست فعنه ها ظاهر از اون دلاله و مجهه تمسک به این روایات فعنه ها ظاهر از دلاله فی خودیت الخبر واحد پس کردین صحیحش فی خودیت خبر واحد نه الخبر واحد اون تعبیر صحیحش خبر راوی واحد واحد از اون راوی محضور مصطلح که از خبر الواقعی قلط میشه گفت خبر الواقع درابی مثلا چیز رو شد رو بکن و از صبحانه متعلق روش لکن صحیحش یه حجیت خبر الواقع این ذات صحیحش نید این در ادم به معارض و حجوب الاخذبه ما عدم الان به صدوری یا عدم الان به مضمونی لند ترجیه به اوسعیه و الادلیه لا يَكَاد و يَوْكِ که مورد حجییته جزی که علمه عدم از این مزیبون ترجیح و عدلیت در دیل که اصلاً از اون دوتا اوسق رو داریم. و وقتقه ما اون ترجیح بین دو بلیه. دو به نه ترجیح تو روات آمدن هنزله آمده اما اون ترزیه بین دو فقیده اشتباه کرده پیش دیگه نه لیس فیها اطلاقون حالا بحث اثر اینه که آیا ما نتیجه بخیل بگیرم از به واسه معیار در بردیه چیه لیس فیها اطلاقون یه ام و جمعی اخبارنها ها نه اطلاق ها مسوخون لبران و حکم تارس اینا فقط ناظر مقام تاراز هست ناظر نیستن که اون حجه هی که این خبری که داره معارضه چه مواسفاتی داشته چه اصافی داشته چه وصفی داشته که حالا معارضه کماییت دور برده ولی قضا را متعقن دلالت تو علاوژی هسته خبر محصوب به قضا متعقنش خبر محصوب به صدورن و مضمونن یا محصوب به صدورش داشته باشیم یا محصوب به مضمون وقتی شون کمای از الله الالعول که اصول به صدور از ترجیح به اشتحار روایه بیننبوان. ترجیح به اشتحار روایه او وساقه راوی به ادارتی این وساقه به, به ادارت نداری و معرض ثانی که ناظر مضمون باشه از ترجیح به موافقت کتاب و مخاربه از آمه این ها ناظره به مضمون هم بعضی هم ناظره به صدور هم پس بنابراین ایشان مرحوم آیه نایمی استظهار شده که قبل متعقه از اخبار الهییه حجیت یا خبر موثوق مفعول در این خلاصه نظر بر کیش روشن منظور آیه آذیایی حاشیهی دارم که متن نباید شبیه خونید قبول فی کوم مطلق الوصول قدر متسع قرار ندن حاضر اخبار نظرو که فقط وصول بذار بشه بل الذی مبارک علی بوتیاکا صورت و ادارت راوی ایشون دنبال ادارت به جمیع طبقاته المسماین در باب الحدیث به صحیح اعلائی که به اصطلاح هم بشه ادارت در جمیع اصطلاح هم از این اونی که الان من تو زهنم زهن ذهن بازم شون رو اصطلاح با بزرگان نمیتون بکنه صحیح اعلائی اصطلاح هم که همشون نفرد آدل باشن جز اجلا اصحاب باشن جز بزرگان باشن. در همه ای طبقا جزوه جلالی حساب باشه کمالای کمال نبویوم که دعوا انسقه لفظه سقه المسئوله انتر برایان عنه الامام اول واقعی کلام الامام این مسئوله ان به متعفیون رسول نبدالرحمن سقه تن آفاقه از اون معاذه بردید اونجایی که در کلام امام باشه فه این نرحمنی سقه تن فس ماله برده و فرده گوی کلام امام میگوی در سؤال این مر اومد اداله، اصلا مورد از وساعت ادالت لا مطلق اومنیت هر رضا انکلز و, و روکان فاسقه این که ایشون در اینجا پرمودن این بحث شده حالا ایشون خیلی اجاده اشاره اجماعی تردن ما در فیلان بحث خودم خودمون گاهی گفتیم توی جاهایی که مثلا فرصه این در جاشی در حق شخصی یه سغطان دارم یکی دو مرتبه توضیحی دادیم ما توضیحی همون پس هل از نکردیم این بحثی دارم که مراد سغطان در عبارت نجاشی چیه؟ یعنی یکی هر رضا از که همین مقدام یاده یکی هر رضا از که و عدلون همین مقدام یکی هر رضا و عدلون و امامیون این صدرا یتحوزان و, و و و یعنی یعنی حالت سخو و خطا و این نداره ضابطه بهسا تو کلمه سقه نگذرون ممنون بحث مستدل نیست ما موضوع بحث نمی‌شیم خیلی مختصر اینجا که که در روایات مراد قاضی لا مطلق محیط هر زخن کذبر و کان فاسقه وقی استفاده استفاد خبر الموسط که بگیم که خبر الموسط با لوگ غیر امامی باشه من که باید مشکلون لولا لو دع و سیرد ولی اجماع العملی طبعاً اکشیعه فی مقام سنبات احکام علامثلی چون احادیث زیادی مثل احادیث فتحیه هد. فتحیه واقعیه که ثباتا اصحابش عمل کردن خصوصا معهده کفایه اندهم ده ها مجرد حبر کمی ظاهرن کمید عبارتش چیز هر حسی داره مجرد ادالت کافی نیست خصوصا به جمعی طباطی فی استنباد ما هوا از معلوم به اجمال این ده من الاحکان اینه انشاءالله در طلاب بحث حقل اشاره بشروع کنید آیان بیان ما چونه علم اجمالی داریم به کار کثیره این علم ادمونی منحل بشه. ما هم میگن اگر ما به یک طریقه از رو واسه طریقه ای که واسهش عدل عمل بکنیم علم ادمونی هم منحل میشه. ایشون مخاط بگه نه. اگر بنا بشه که فقط به خبر اع و خبر غیر ما رو خارج بکنیم اون علم ادمونی ما منحل میشه. اشاره بده. شاید اشاره مستدعیه حالا تو شعن بزرگان این طوره. اما نه اینکه ایشون ناظره شان ناظره باشه به نصف کلمات صاحب مزارک چون خبر موثر عمل نمیکنه. خبر موثب رو مال فتحیه و آففیه و سونیو، و اینجور مزاره ایشون بهش عمل نمیکنه. کنم اونا اشکالشون اینه که اگر بناروسه فقط در خبر فحیحشی عمل بکنیم این در کافی نیست و اما کافی نیست برای انحلال اون علم اجمالی کبیر ما کافی نیست خبشنشون ایشون بگه خصوصا معهدمی که با یه اندهان مجرد و... اتباره اتباره مجرد و خبر العاده، خصوصا به جمعیه طبقاته اگر این باشه فی از زنبات ما معلوم به اجمال اندهان ماند احکان این معلوم به اجمال اصطلاحا علم اجمالی کبیر اسمشون میذارن علم اجوالیه کبیر که ما در مجموعه روایات احکامی داریم که باید انجام بدیم یه علم اجمالی دوم دو اون مقدار احکامی که در ذهن خبر عقله امامیه این علم اجوالیه این علم اجوالیه دوم علم اول رو منحل میکنه پس لازم نیست با همه خبرها روش نشه امامیا مخاطب بگه نه این علم اجوالیه دوم منحل نمیکنه باید با موثرا عمل بکنیم چون خیلی مختصف نویسته موجب نویسته و ولاش ولا محضاله هم کنه انیوان فلانتقاد من تعبیر تحبیر الاداره لبساقه روبما یو سرحر ان المنات خیلی هو خواهات هرچه که امام اداره نفرمون بساقه این نقطه نوته بساقه و امکان الموثق اندال ما فوق الاداره اگر چه من کسی رو که امام میگه سرتا حکم بالاتر از عدالته پس بگیم نکته نکته رسالته معیدا معیدا الی که به که به ارجاء الی کتب بنی فضل به بزابطه چون امام ارجاءنده که تو کتب بنی فضل پس معنی میشه اعتبار به وساغته نه به عدالت چون فتنه‌ای بوده این خالص بود که از متن ماضیه خوندی برای استظهار این مطلب که مهم و سا... وصاقته نه ادالت و اگر خبستقه بود میشه او عمل میکنی معیلن لاله که به ارجاع خود بنی فضا لمهد وصاقته من توضیحاتو سابقا اعز کردم اولا رواستی که ارجاع لخوتو بنی فضا یک حدیث بیشتر نیست شکل. یک حدیث در قیمت شیخ توصی. سند اون حلیز هم ضعیفه پس خادم حسین روزه شیخ عبی عبدالله خادم شه عبی عبدالله خادم شه خب اعتمال بر چین روایتی از خادمه یکی از علما برای احکام شرعی و بعد یک قاعده اصولی بگیم عقل مراد نیست مراد به صاقته سهب بودنه تحرزه حزبه. خیلی به زیاد عجیب میاد و از کنیم هیچ مونه شباده دی غیر از کلام شیخ لقیبه مثلا خودشه جاهای دیگه در تهذیب مثلا بگیم روایت از کتوبه و نیکازال از که خودشم نه مگر فضال نه، ارجاء در مربوطه نه در دیگه دیگه در روایی ما نسکی را به تحریب از خواب قومی ما که مغایر بود در مثلا کلام ما از الله سلام علیه و, صلات و, صلات و بوعدانا همش چیزی رو نگفتن وسط عمل اونها به واسطه تاثیر کمه کم مثل مرحوم صدق مربون شیخ نجفی پس مجال روایات و مجال فهارس هم مربون نجاشی هیچ اشاره مطلب نداره در خطبه رجال هم هیچ اشاره ما بی مطلب نداره با نموذج فقط و فقط این عبارت به کتاب ریادات شیخ بهدوسی منحصه به اون سندوشن که ضعیفه اصولاً به نوایه مطلقی رو من اینجا ارز اگر بنا بشه،, بنا بشه که ما یک بحث اصولی رو تنظیبش رو کنیم به خاطر روایت مثل خود, خود رو ما رو بگذارم با اعتماد بر این روایت که با روایت باهده هست با این حجیت صده ها روایتی که ما در فکر داریم ما تو صحیح دو موارد داریم بزرگواران داری. با این روایت واحده بعض اون صد روایت درست بکنیم انصافا از نظر علمی خیلی ارزش داره چون اون صد روایت حالشون اون از از روایت بهتره اون هم در مصادر متعدد رو هم فتوای اصحاب برای هست هم خیلی جو شواهد و سنت دار با این روایت با این حاله یعنی کی سوال گذاشت بر من حاضر شما چطور شده بی مراجع مراجعه کردین؟ چه نکته‌ای تو این روایت رو شما مراجعه کرد؟ شما می این بی مراجعه می‌کنی یک بحث اصولی رو خوب بکنید یک بحث اصولی رو پایه‌گذاری می‌کنی پایه‌گذاری خیلی عجیب رو. می‌خوای چه قاعده ها روایت رو و باطن باید, باید درست بکنیم بش احل بکنید پس قطعاً اون روایت منشأ درخشنه، روشن تره. اینجای شوخی نیست که این چیجور استدلال علمی اونا شواهد بسیار فراوانی دارن اون روایت اصحان مدرده شواهدش خطعاً ثمانتره تا این روایت روایت روایت روایت را از از از همه قیمت یعنی شما چه نکته این منچه شد که بیدیم روایت روایت که نظریر نداره هیچ شوالی دیگه اون رو تایید نمی شما بیاییم داشته عمل بکنیم برای اینکه که با کنیم باید جنه فبر صفت مثلا م... صفت رو درست رو م... خود این بحث بسیار بحث و مشکل یعنی واقعا شعن مرمون آزیا و احصالیشان در این و اینشالله از این پنجه به اخبار رو می کنم من منها الى اخبار رو واضح که یا جاید بعد صحابه الا بعد که احضر فتواه و روایه احضر فتواه که به درمان نهار بیدیم میخوره اما از روایه چرا و خوندیم, خوندیم مفترند اگه تکرار دیم بعد خودیشون در آخر فرم و غیر داله که اطبار علیتی یو سفاد منها اطبار خبر موسوقه به این روشن نیست چون اطبار معینی هست گفتیم همه یا با هم بریدیم شد ده نفر هم چه همین چه همین چه همین بیشتر محمد چند نفر معین با این تا معین نمیشه از برای است از توش کجا بودیم چون خبر موسیقون به؟ میشه این؟ زابطه کجا ما از گرار در بودیم اضاحت حدیثم و علیه که با حدیثم خبر موسیقون به امام ارجال نمیشه از تو امام ارجاز محمد المسلم به محمد مسلم به نو قدس هم امین خبر موسوم پس این استدلال مرمومی ناید قدس الان سره روشن نیست و من ها مازل علا رجوع الارباب و و این مبارک ورده و هم الواقع پر جروفی ها خبر احتجاز شاید حالا کار مقرر باشه این خبر در کتاب شیف صدوق آمده در کتاب قیبت شیخ تولسی آمده حال واقع الواغی که قبل از احتجاز آمده شد تو به شد. نمی و هم منحواظز الواقع پر جعوبی داره باقی حدیث نه، این رواده از خب این رواده خودشم داره که من می خواهده بشم باید اگر یادتون باشه در روایی هستی که های الواقع این مبنید بلید که مراد از رواغ یعنی فقط رواغ باشه به شما احکام را از روایات در بیارید یک استظهار از این حدیث اوالکی یک استظهار که این حدیثوان مراد از رواغ فقاها هست و مراد حوادث واقعه و قایه اجتماعیه اون ولادی فقیده اصلا با به بحث استنبات نداره قطع فهم بودید؟ ایشون به ظاهرش و نده ما على احبار منوازه تا رجوع البته احتمال اینها رو مثلا مقرر نویش باشه الله شعن مربون جانه این این اجل است خب علمای ما بیان کمی کوتاهی در تبعه تب داشته با این تتبعه یکی رو از که خیلی هم که مفتر نه بود روشن شد ما اخبار نداریم یه خبر واحد داریم که من بعد سندر شراب شواهدش هم معایدش نیست بله این خبر بعدها نه در زمان نجاشی بعدها مشهور شد بلکه بعدها ها مخصوصا بعد از قرن دوازدهم در رجال شیعه شد که یک مرزا قوسیج گفتن افراد مجبور رو به روایت بر این بله مشهور شد حتی در کلمات شیخ انصاری هم تقریبا یه جوری شد که ارسال مسلمات شد یعنی مسلم قبول شد ولذا ارذن کلی معارضون مناقشه میکنه که اصلا این مطلب ثابت نیست یا که ارسال مسلمات شده این مشهور شده الله علی اخبار نیست اینم ماله ولی شالفی هم نمومی و سفا دونن مجموع اعتبارات خبراً موصوبه به این خیلی مشکله چون این افرادی که اونهای را جاداده شده یا همین کتاب و هم راویان، هم هم فقیه هم خب این فقاقه خودش این فقاقه خودش ایک سفر از کرد این هجیت قول احل خبره خودش ایک هجیت ای ای اوحراریست هجیت قول بسی خبر خبروانه از با مجهد با لحظه خبر خلص بشه خبر واحد اونجایی دید که خبر شهرش طریقیت سرگه یک چیسی به شما میرد بیر بیرون از در این بست در این شهرش این غیر از خبره غیر از قول دکتره غیر قول مهندسه و مثلا ایمان ارجان هم به کتاب بنیفرزار ممکنه اون رواق چون این ارجان به کتاب بنیفرزار قبیل خصیه خارجیه از حقیقیه که نیز. ممکنه نظر اما این باشه که اینا هم راویه سرایی همه هم تقیحن. هم بزرگوار هم هم هم در این کتب آمده با دقت انتخاب شده این چیز را در خبرتاقه داره؟ حالا برپرد، ایشون در اعتبار خبر به بعد یا سبا دومن بردها هم من اعتماد در خبرستقه کار مفبوغاً ان اندل اصحابه مرتکزه اینه عرض که رفت که افایی رسول نردو رحمان سه قسمان و انو دینی که اصل وجه خبر مسلم بوده سوال در فرده نظر اون روایت عرض سه داره در دو مرتنش دقیقه نیامایده در دو مثلی که رسلنا اخو به معالم دی مینوس از ما در یک مثلی از اون مثلی که توش دوامده صحیحه اون دو مثلی دیگه صحیح نیست اصلا علیه این خبر و از کلی مراد اثر در اونجا مراد جلالتشان ایشون در علمه در عقاید در فقه آیا فقه درست روی اساس در روی مبانی فاسده نیست که نداره یه وقتی به وجود خبرش قم تقدیم ولی ذالکه مقدر که کسی در اخبار از سوال و وساقت راوی به هیچ سوی را ما اندر و سوال کانه من نمی کنم کسی رو منر اخوار ایشان کجا بوده ما که توی از اون که در وقتی شده در درده سریعا ولایو تر وقتم هنه از ولای چون منگاه باید پندن این الگاهاتی نیخونم به خاطر فواهد علمی لمثل مسئله که مسئله عصوری است فعنه ها لولت تکنه عقل و توات و تواهد متواترتاً معناً حالا ایشون تقدیر به توات کرده، اصلا کتاب بلی فضا به یک کارجه گرده که یک خبر وارد ضعیفه شد و ایشون تواهدان مرموی اصباحات میده یا خبر احجاز امن خواهد وارد فرد در توقیق مبارک بوده جه دیگه وارد نش چطوری که متواتر معدن فلا اشرال فی مجموعه ها اجمالاً اجمالا للعلم به صدور بعض ها انهم این اصطلاح تواتر اجمالی مشون در چه به کار برده این طبعا مطلبی است که در ابتدا راجع به تواتر میگفتن و حدیثی میگفتن که لحظش متواتر باشه ادعا کردن حدیث متواتر منکر بعنه متعمده تو همین مناقشات یک که جو اینجا شاید من کن تو معوللا آوری و متاصل لظزی بود. بر متاسر معنگیر روش اضافی کردن جایی که مجموعه اخبار باشه اون ماصل و مجموع مجموع ددارات شوشن بشه، مثل مجموعه به نوشتن به سال جنگ های رو در جنگگاه رو سرز کرده از مجموعه سال ش شروعاعت بلکه فوق در جش باشه بعد ها تاسر اجمالی رو هم اضافه کردن در مقابلول تاسر معنوی، من از کردم یه مغزار این معنا احتمالاً از کلمات فخرازی تو محصول در میان تواتر اجمالی توی کلمات مختصرین و ما هم آمده یعنی تو همی کرده مهمون نایین و دیگران تواتر اجمالی تواتر به این صورتی که ما مجموعه یه روایات داشته باشیم میداریم که بعضی هاش قطعا سادر شده نه اینکه مضمون نه لحظ تواتر اجمالی میدونیم که برش قطعا سازش رو تش میتون این چند میشهن تور اجانی اصط تاسور لحظی دارن تواسور برنوی دارن و تاسور اجمالی و اگر تواتور اجمالی یه چیزی شبیه ح اجمالی میشه به ما شد. <تصفح> یعنی ما میدونیم مثلا خ پنجاه بر روده که قطعا دو تاش یا سه تاش ساله شده این داریم که شد. حالا به و اگر آب‌خانه نتیجه بندی بکنی و اون را که کارگر مسیحیان همه مقبولیم، اون مردانی که همه کارگر یعنی مثلا بگیم کارگر مسیحیان که باشه، از کارگرانی آلم باشه، از کارگرانی که عادل باشه، این استلالات تواتر مرد در این تعریف که از پدر مرحوم فواده، ایشون تواضع حالا این مخصه میخ در تو فرز شالاق میکن معرب کولی توی مسبب از استادش و مینایی نتن تااس اجماله قبول نکرده. این هست گاه خوی هم در تغییرریب ایشان که ال رو تعحللات باشه هم در شمات ایشان مطلبی هست که در کتاب حوارد خلاف بشه این هست ای تازگی نداره عدیت موارد هست که کلمات قون نی در حوا و که مرب حاضگی نوشتهن. با کتابی گاردگیری نوشتن اجاد طریقات یا در خواهی در خود بحث‌های اخروی با هم دیگه تلاوز دارن ی متعرض میشن که مرحوم نائینی اینجا یه جور فرمودن نائینی ترکیه ای رو قاعده من این بحثه حالا مثلا نائینی بشم نکته داشته ثابت نیست علایهان من چون از مرحوم آیت گنجانی قدس سره از حواظمه بود شنیدم که اعتبار به موارد چون با این که توائز بویی بعد شده مثلا آراه متاخیر مرمون نایمی چون تاریخی آرکوی آراء دوره اخیر مرمون این که پیش ما حساب اعتبار به هم حرف توائزه اصوله ازا اگر بیشتر رو من جزه حالا من مزکت نمیدونم اعتبار رو به همون توائز میدیم با حلایهاله ظاهر فوارد رسول آنه عبارت اونجارم که کنم اونم بختمون شده ظاهر عبارت فوارد رسول مرموناعینی تواتر اجمالی رو قبول داده و فکر میکنم منم کنم تو ذهتم از آنگاه بجنالی این رو شیدم که ایشون قبول میکنن تواتر حالا کفا ایشون هست مراجع نکردن که تواتر اجمالی رو ایشون قبول میکنن و ایشون دارم به همکر محط برنایمی از تواصل اجمالی به در و انا موزن یه و اخبار و راه و محترمه صفحه 225 از این مصباح و 2 چاپی که پشت شماله 47 اجمالی نکمه در خود تواصل اجمالی رو قبول میکنه حقم با فوالده. این حقیقه و میگن به اعتماد بر کلمات شاگرد و ایشان آیه بزرگ کنه اعتماد بر فوائد و صل الله علیه محمد فردا انشاءالله کلمه ها خویی به نحوی اینکه آیه این, این نحره خب الان کلمه ها ممنونه این کلمات تو که حسابا جنبندیی در روایات چه هر <تسجار> یا <تسجار> این که از <متاز> دستیان یاد این یاد برای ما کافی که بشه استناب کنید به خودشمس موضوعیت نداشته که ما جنب تنیکنی که همه از یا از جایی که از ما روم از از ما همه یعنی این کسی نصفه هم اون لا روزن توضیح به تنماییت من نمیگرم کنم از خودمان اصلا سؤال بزنم ایشیم خوزماره و امام ارجاع دادن به نحو قضیه خارجیه نمیده هم.